این داستان چایخانه ستار روزی سه دوست جوان به نام‌های کوئمون، ساسوکه و چوبه که هر سه از بازرگان‌های شهر ساکایی بودند، قرار گذاشتند که با هم به زیارت سومیوشی بروند. در اونجا در جشن سالانه بهار شرکت کنند. اونا تصمیم گرفته بودند که شب خودشون رو به اونجا برسونن تا بتونن از ابتدای جشن که با طلوع آفتاب برگزار میشد در اون جشن شرکت کنند اما اون روز هوا خیلی گرم بود و از این رو اونها نتونستن با سرعتی که پیش بینی کرده بودن راه برند بارها ناچار شدند سر راه توی چایخونه های مختلف نشینن و نفس تازه کنند خورشید کم کم میخواست غروب کنه. به همین خاطر سه دوست برای رسیدن به سومیوشی هنوز راه درازی رو در پیش داشتند و باید از جنگل انبوه و تیروتاری میگذشتند. اونها در حاشه جنگل نشستند تا کمی استراحت کنند. ساسوکه خیلی عجله داشت. میخواست سودتر حرکت بکنه. چون اگه میخواستن همون روز به شهر برسن باید هنوز که هوا روشن بود به راهشون ادامه بدن کوهمون نمی‌خواست نمیخواست بیشتر برن پیشنهاد کرد که به دهکدهی که تو نزدیکی ها بود برن و شب رو اونجا بگذرونن و بامداد فردا راهشون رو از سر بگیرن ساسوکه اعتراض کرد گفت ما میخوایم اول جشن اونجا باشیم دیدنی ترین قسمت جشن موقعیه که خورشید بالا میاد و مراسم شروع میشه بیاد را بیفتیم و بریم هوا خنکتر میشه را رفتن هم میشه اما چوبه هم که با کوئیمون همراه بود گفت حق با کوئیمونه به هر حال ما نمیتونیم زودتر از شب به اونجا برسیم گذشتن از جنگل در تاریکی کار خوب و عاقلانه ای نیست هر وقت صبح شد زود حرکت میکنیم و میتونیم بیشتر از قسمت های رو هم ببینیم. ساسوکه با لحنی طعنه آمیز و مسخره گفت: از راهسنه و اشباح میترسید؟ من هیچ فکر نمیکردم جنگل کوچیکی این همه شما رو به وحشت بندازه. کویمون در پاسخ ساسوکه گفت: تو مگه نمیترسی؟ خودتو به اون راه نزن که نمیدونی جنگل پر از راه سنه. نگو که نمیدونی جاهای خلوت همیشه حوادث عجیب اتفاق میفته ساسوکه دست به دسته شمشیر کوچیکی که از کمربندش آویزون بود زد و گفت نه که نمیترسم این رو به شما ثابت میکنم اگه شما با من نیان من خودم به تنهایی میرم جنگل خیلی بزرگ نیست اگه توی اون اتفاقی برام بیفته میتونم گیریممو اما از آب بیرون بکشم هشدارهای دوستان در ساسوکه اثر نکرد و اون حاضر نشد از تصمیمش برگرده ساسوکه دو همراه خودش رو مسخره کرد و بزدل و ترسو خوند دوستان خشمگین از هم جدا شدند کوه منوچوبه به دهکده رفتن و ساسوکه کمربندش رو که شمشیر از اون آویخته بود محکم تر بست و وارد جنگل شد حتی یه بارم هم به پشت سرش نگاه نکرد ببینه دوستاش به میرن یا نه. بعد از چند دقیقه همونطور که ساسوکه پیشمینی کرده بود از گرمای آفتاب کاسته شد. دیگه نور خورشید به زحمت از دابلای شاخ و برکا به زمین میرسید. هوا بیشتر از پیش تاریک شد و ناگهان عبر سیاهی بر فراز جنگل پیدا شد و بارانی ریز اما بسیار تند باریدن گرفت. ساسوکه با خودش گفت انتظار این بارون رو نداشتم دیگه بعد زیر شاخه‌های درخت راه می‌رفت که بارون نخوره و در جستجوی پناهگاهی برای خودش بود بعد از چند دقیقه کمی از تاریکی جنگل کم شد و راه به جای خالی از درختی در جنگل رسید ساسوکه که می‌خواست از بارون در امان بمونه در اون سویه جای خالی از درخت جنگل چشمش به روشنایی افتاد و چون خوب اونجا رو نگاه کرد از دور خونه ای رو تشخیص داد ساسوکه با خودش گفت هیچ وقت نباید و شهامتم رو دست بدم من تو اون خونه هم میتونم از بارون درمون باشم و هم میتونم لباسامو که تر شده خوش کنم جای خالی از درخت جنگل زیاد بزرگ نیست هر وقت بودو هم از اونجا بگذرم، زیاد بارون نمیخورم. خیسم نمیشم. اون زیر رگبار و بارون پا به دو گذاشت و از جای خالی از درخت جنگل گذشت و به طرف خونه رفت. دور خونه پرچین و چپری نداشت چون در ورودی اون باز بود. ساسوکه بدون هیچ تردیدی کفشای سندلش و دم در بیرون آورد و وارد خونه شد. و به اتاقی که چراغی روغنی روشنش میکرد وارد شد اتاقی بود خیلی راحت و تمیز و حسیرهای پاکیزه که کف اون رو میپوشند در کنار چراغ منقلی از چینی که با نقش برجسته های زیبا آراسته شده بود قرار داشت و در گوشه تونگی ساکه با پیاله روی یک سینی مزین گذاشته شده بود دوستانه عزیز ساکه نوشابه یه که ها اون رو از برنج می گیرن و گرم گرم می نوشند. جای تعجب بود، اتاق خالی بود و خونه در سکوتی عمیق فرو رفته بود و صدای جز صدای یک نواخت رگبار و بارون که همچنان میبارید به گوش نمیرسید. اما ساسوکه از این خاموشی و سکوت شگفتانگیز نگران و ناراحت نشد حتی از خودش نپرسید چطور ممکنه خونه ای اینطور پاک و پاکیزه، مرتب و منظم تو دل انبوه جنگل وجود داشته باشه. او فقط خوشحال بود که پناهگاه پیدا کرده و از بارون در امان مونده. آسین رو که از رگبار بارون خیس شده بود، چلون دو دستهاش رو روی زغال فروزان منقل گرم کرد. با این همه ساسوکه باز هم سردش بود. لباسهاش زیر بارون خیس شده بودن و به تنش چسبیده بودن. با خودش گفت فوراً چیز گرمی نخورم بدون شک سرما می‌خورم. هرچی چی می‌خواد بشه من این ساکر رو می‌نوشم و اهمیتی به این نمیدم که اونو برای کی آماده کردن. ساکه از سرماخوردگی من پیشگیری می‌کنه. اما در همون لحظه که دستش رو برای برداشتن پیاله دراز کرد جیر جیری از پلکانی که بیگمان به طبقه بالا میرفت و متعاقب اون صدای پاهایی ظریف و خشخشه جامعه ابریشمی از دهلیز به گوش ساسوکه رسید و در اتاق باز شد. دختری جوان وارد شد. او چنان زیبا و دلربا بود که ساسوکه به دیدنش از حیرت به جای خودش خشکش زد. به خودش آفرین گفت که در سایه شهامت و دلیری میتونه از ابتدای جشن در سومیوشی باشه. دختر واقعا زیبایی بیمانندی داشت. کیمونوی از ابریشم سرخ با آستینای گشاد که تقریبا تا روی زمین میرسیدند با گلای زرینی آراسته شده بود. کمربند زردوزی شدهی به کمر بسته بود که همه رنگای رنگین کمان اون موج میزدند. تو دستای سفید و لطیفش ستاری داشت که چوبی سیاه روی کاسه صوتی اون کشیده شده بود. دختر جوان زیبا به چالاکی و تننازی نازی وسط اتاق نشست و ساز رو در کنار خودش گذاشت و بلند شد به ادب و احترام در برابر ساسوکه تعظیم کرد. ساسوکه هم به نوبه خودش بلند شد. در برابر اون سر خم کرد و خواست از اون پوزش بخواد که بی اجازه وارد خونه شده اما قبل از اینکه دهن باز کنه دختر جوون لبخند خوشایندی به روش صد و سرش رو به توندی تکون داد بدون اینکه کلمه ای حرف بزنه پیاله ای رو پر از کرد و به اون داد ساسو که یک مرتبه متوجه شد دختر حتی دهنش رو برای سلام کردن باز نکرد با خودش گفت حتما لاله و از این رو خودش هم حرفی نزد پیاله رو که اون لبخن زنان پیش آورده بود گرفت و دختر جوان در اون ساکه ریخت و ساسوکه با تعجب بسیار دید که ساکه هنوز گرمی دل پسند و خوشایندی داره و بسیار خوشمزه است چهره دختر جوان نشون میداد که خوشحاله که اون ساکه رو پسندیده او دوباره پیالش رو پر کرد اما هر بار که ساسوکه خواست به نوبه خودش پیاله اونو پر کنه دختر با سر اشاره می کرد که نمی خواد. سرانجام ساسوکه تنگ ساکر رو به تنهای خالی کرد و نفهمید که آیا از ساکه مست شد یا زیبایی دختر جوان متوشش کرد. دختر جوان به اون اشاره کرد که هر طور راحت تر بلشینه و بعد ستاره خودشو به دست گرفت و مزرابی از کمربند خودش بیرون آورد در بیرون بارون بند اومده بود لباسای ساسوکه خوش شده بودن و اون باید بلند شهور به راهش ادامه بده اما به نظر میرسید که همه چیزو فراموش کرده به ستون زده اتاق تکیه داده بود و چشم به مهماندار دلفری به خودش دوخته بود و با حالی شگفت زده با خودش فکر میکرد که فردا وقتی سرگذشت عجیب خودم رو به یاران خود که ترس و بزدلی اونها رو از این خوشی و لذت محروم کرده بود تعریف کنه اونها چه حالی خواهند داشت؟ نختر جوان ستاره خودش رو کوک کرد و به نواختن آهنگی پرداخت که ساسوکه تا اون روز آهنگی به اون دلنشینی نشینده بود. نوای ساز فضای اتاق رو پر کرد. آهنگ، گاهی نرم و دلنشین، گاهی تند دو شکف آمیز میشد. از هر سو وجود ساسوکه رو در بین می و مسحورش می کرد. دختر همونطور که ساز میزد زد چشم چشم دلفریبش رو که چون آتشی سوزان میدرخشیدند از مرد جوان نمی گرفت. ساسوکه احساس می کرد که وجودش در نوای سهرامیز غرق شده و برای اون دیگه دنیایی جز این موسیقی و اون ها وجود نداره گاهی که دختر جوان به سختی چنگ در های ساز میزد که احساس عجیبی در خودش حس میکرد میگفتی انگار چیزی ناپیدا و لیز دور گردنش میپیچه اما چون دست به گردنش میکشید این احساس از بین میرفت مثل اینکه دستش اون چیز ناپیدار رو پاره می کرد. دختر جوون، هر بار که این حرکت رو از اون می چین به پیشونی و گره به ابرواش می داخت و به زودی لبخندی به لباش می شکفت و به نواختن ساز ادامه میداد. سیمه وسطی ساز با قدرت بیشتری به اهتزاز در اومد و ساسوکه احساس کرد که فشار اون چیز ناپیدار سختتر میشه. بلاخره با وحشت بسیار فهمید که به دام افتاده پس همه نیروی خودش رو جمع کرد و شمشیر کوتاهش رو از غلاف بیرون کشید تا به موقع بتونه از خودش دفاع کنه دختر جوان به خشم زیاد به اون نگاه کرد و آنچنان زخمی تندی به سیم ساز زد که سیم پاره شد و اومد و دوره ساسوکه پیچید ساسوکه خاص با شمشیر خودش سیم رو پاره کنه اما دیگه دیر شده بود. سیم اونو به ستونی که به اون تکیه داده بود بسته بود. شمشیر از دستش افتاد و در کاسه صوتی ساز که چرمی سیاه روی اون کشیده شده بود فرو رفت. در همین لحظه خشم دختر جوان فرو نشست و چهرش حالتی زده و تقریبا دردمند پیدا کرد. اون از جاش بلند شد و سازش رو برداشت و مثل وقتی که به اتاق اومده بود خاموش و آروم از اونجا بیرون رفت سکوت سنگین خونه رو فرا گرفت سرمایه شب از پنجره به اتاق میزد زد چراغ برای آخرین بار سوسوی زد و خاموش شد زندانی در تاریکی محض موند و به وحشت با خودش گفت دیگه کارم ساخته است نمیتونم از جام تکون بخورم، نه شمشیر به دست دارم که بتونم از خودم دفاع کنم. خوشبختانه به زودی سپیده دمید و روشنای روز اتاق رو گرفت. ساسوکه دید که حسیری که کف و اتاق افتاده بودن پاره پارند و تقریبا پوسیدند. و قشر زخیمی از گرد و خاک روی اون نشسته. در ورودی باز نبود، بلکه از چهارچوبش بیرون افتاده بود. به جای منقل، کپی خاکستر و به جای تنگ چینی و پیاله چینی، دو سنگ در اونجا افتاده بودند که یکی بزرگتر از دیگری بود. ساسوکه اول فکر کرد خواب دیده. اما هنوز با سیم به ستون اتاق بسته شده بود و این نشون میداد که خواب ندیده. قطره های خون تازه ای تا دم در ریخته شده بودند که او شب اونها رو ندیده بود. ساسوکه کوششی کرد و تکونی به خودش داد که بفهمه چی به سرش اومده اما ناگهان خواب اون رو در رو بود بالاخره پرتوی خورشید از همه درس و سوراخ دیوارهایی فروریخته به درون اتاق تابید و ساسوکه صدای کوئمون رو شنید که میگفت چوبه این نام عجیب رو روی کتیبه نوشتن نگاه کن چایخانه عجب احمقایی بودن که در دور افتاده ترین جای جنگل چایخانه خانه ساختند. عجیب نیست صاحب چنین چای خونه ای نتونسته اینجا زندگی خودش رو اداره کنه و گذاشته رفته و خونه ویرون شده. ساسوکه به صدای دوستای خودش بیدار شد. فریازد. زد من چوبه کجایید؟ بیاد کمکم کنید. چوبه با تعجب گفت. مثل اینکه ساسوکه ما رو صدا میکنه. اون اینجا چی کار میکنه؟ چی به سرش اومده؟ دو دوست وارد خونه شدن و ساسوکه رو از ستون اتاق باز کردند. ساسوکه اون چرا که شب پیش به سرش اومده بود برای دو دوستش تعریف کرد. بعد به اونها گفت که میخواد بره و همه جای خونه رو بگرده و دختر جوان رو پیدا کنه. ببینه یه موقع ندونسته و نخواسته دختر جوان رو ضمن دست و پا های خودش سخمی نکرده؟ سه دوست ردخونهایی رو که به زمین ریخته بود گرفتن و رفتن از پلکانی که از هم میپاشید بالا رفتن و به طبقه بالا رسیدن. در اونجا انکبوت خیلی درشتی زیر تارهایی دراز پیدا کردن که بیجان به زمین افتاده بود. شمشیر ساسوکه تنش رو سوراخ کرده بود. چوبه نتونست از زدن لبخند مسخره آمیز خودداری بکنه و به ساسوکه نگه خوب دیدی که ما حق داشتیم که میگفتیم عاقلانه نیست که شب تو جنگل راه بریم چون میدونستیم ممکنه اتفاق عجیبی بیفته خوب اقلا تجربه پیدا کردی ساسوکه در جوابش گفت اما من نترسیدم و شمشیرش در غلاف خودش گذاشت سه دوست دوباره با هم توافق کردن و به سوی سومیوشی به راه افتادند تا اقلا بتونند ظهر خود رو به اونجا برسونند و قسمتی از جشن رو ببینند عزیزان شنونده امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید